مالک الجبار المنتقم و قول یا رب المستضعفی امروز برای من سخن گفتن مشکل است خصوص درباره شهادت و بخصوص امروز که ایده خون شیعت درباره کاری که حسین در تاریخ کرده است بسیار سخن گفتند و بسیار نوشتند و میگویند و مینویسند خودما بگونه ای آن را توجیح کردند و متجددین روشن بگونه دیگر اما من تازگی متوجه شدم که امکان ندارد که کاری را که حسین کرده است بفهمیم مگر اینکه بفهمیم که شهادت چیست عظمت حسین از یک سو و شخص شناسی ما از سوی دیگر موجب شده است که اون چرا که از حسین بزرگتر است در زیر درخشش عظمت حسین نبینیم و اون که از حسین بزرگتر است اون چیزی است که حسین به آن قربانی شد این است که همواره از حسین سخن گفته ایم و ما هرگز از آن که حسین به خاطر آن سخاوتمندانه خود را قربانی کرد هرگز یاد نکردیم من میخواستم امروز درباره باره اون اصلی که حسین و حسین ها قربانیش شدند و عظمت حسین در تاریخ بشر و در مذهب ما و در پیشگاه خرد و خالق به خاطر این است که این اصل را و این معنا را با تمام زندگیشان و مرگشان نشان داده اند در اینجا مطرح کنند شهادت ولی کار مشکلیست مشکل به خاطر این است که فیر از اون که علمی و قدرت فکری من اجازه چنین کاری نمیدهد تناقضی که در این مسئله وجود دارد نسبت به گوینده حال را بر من دشوارتر کرده یکی اینکه شهادت را به عنوان یک مسئله فکری علمی فلسفی باید مطرح کنم و در این حال باید فقط دیشم. و استدلال کنم و تنها از قدرت علم و منطق مدد بگیرم و سوی دیگر داستان شهادت و اونچه که شهادت را و شهادت اونها را می میکند. به قدری احساسی و به قدری هیجان‌آمیز و عاشقانه که روح را به آتش میکشد و منطق را فلج می‌کند و قدرت ناطقه را ضعیف و اندیشیدن را دشوار این است که شهادت آمی است از یک عشق گدازان و از یک حکمت عمیق و پیچیده و این دو را با هم نمی توان بیان کرد و در نتیجه حق سخن را ادانمون بخصوص که آدمی که از نظر روحی و عاطفی ضعیف است بیان براش مشکل سره ولی به حال تا اونجا که در قدرتم باشه اون که میخواستم بگویم و شاید برخی از اون که میخواستم بگویم بگویم برای فهمیدن شهادت باید اول مکتبی را که شهادت در اون مکتب معنی میدهد و شهادت در این طرز تفکر قابل توجیه هست و در این عقیده خاص شهادت ارزش می‌یابد روشن بشه با اون عبارت هست مکتبی که حسین یکی از مظاهر این مکتب است. و جریان تاریخی و نبرد تاریخی در سرگذشت انسان است. که حسین یک پرچمدار این نبرده و کربلای او یک صحنه از سحنه های این نبرد واحدی که در جبهههای مختلف و نصف ها و های مختلف در طول تاریخ از آغاز تا حال آینده جاری برای اینکه به سرعت اشاره کرده باشم تا اصل بحثم روشن بشه اشاره ای میکنم به اون که در برخی از درس گفتم ولی چون غالبا دانشجویان خود من در اینجا تشو دارند احتیاج به توضیح فراوانتر نیست فقط اشاره میکنم تا تسلسل منطقی بحث در ذهنشون تجدید بشه حسین در اتصال به اون تسلسل نحوتی که در تاریخ ابراهیمی وجود دارد معنی میدهد و باید معنی شود و انقلابش باید تفسیر و توجیه گردد. به صورت مجرد حسین را در تاریخ مطرح کردن و جنگ کربلا را به صورت یک حادثه تاریخی مجرد از پایگاه های تاریخی به اجتماعیش جدا کردن موجب می شود که ما اون را که معنی ابدی دارد و هموار زنده است به صورت یک حادثه قمنگیز گذشته دردیاریم چنان که دل و در برابرش فقط بگیریم چنان که میگیریم کربلا را و حسین را از اندام تاریخی و اعتقادی و مکتبیش اگر جدا کنیم مثل این است که از یک پیکر زنده واحد یک عوض را قطع کنیم و جدا مطالعهش کنیم یا نگهداریش کنیم اونچه که بهش اشاره کردم در درتا در طول تاریخ بشری نهضت های دینی را به دو دست بزرگ می شود تقسیم بندی کرد. بر اساس محتوای این دینها ها و همچنین بر اساس سنخ پیامبرانشون و بنیان گذارانشون و بر اساس وابستگی طبقاتی و اجتماعی این رهبران دینی و همچنین بر اساس جهت دعوتی که این دعوت کنندگان خلق را بدان میخوانداند. بر این اساس و با این ملاک همه پیامبران تاریخ به اصطلاح تاریخی پیامبران دروغین یا راستین هر کس بنیان یک نهضت دینی را در تاریخ نهاده است اینها دو دسته هستند یک دسته یک گروه پیغمبران سلسله ای هستند که بزرگترین بنیانگذار جهانیش ابراهیم است این پیامبران که از ابراهیم به بعد برای ما سناخت ترش شدند چون از نظر تاریخی به ما نزدیکترند، دارند هستند از پیامبرانی که وجه مشترکشان از نظر اجتماعی این است که همگی از محرومترین های اجتماعی زندگی اجتماعی و اقتصادی زمانشان برخاستند و به تصریح شخص پیغمبر اسلام همگی شوپان بودند و به تصریح تاریخ غالبا چوپانی میکردند و جز چند تنشان که اونها کارگران حرفهای بسیار ساده و گرسنه و برخلاف پیامبران خارج از این سلسله یا رهبران مکتبهای معنوی و اخلاقی خارج از این سلسله چه در چین وابسته به نژاد زرف چه در هند چه در ایران و چه بزرگان و بنیانگذاران مکتبهای عرفانی و اخلاقی یونان بدون استثنا همگی اشرافی بودند و برخواست از طبقات مرفه و برخوردار و قدرتمند در تاریخ طبقات قدرتمند حاکم عبارت بودند از سه لایه‌ای که یک طبقه حاکم را می ساختند طبقه زورمند طبقه زرمند و طبقه روحانی چه هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی و هم قدرت ایمان خلق را در دست خود داشتند و چه با هم همساز بودند این سه و چه با هم مخالف برحال سازششون یا عدم سازششون بر سر حکومت بر خلق بوده است نه برای خرد یکایک یکایک از هند و چین گرفته رفته تایونان همگی از پدر یا مادر یا از هر دو وابسته به طبقه شاهزادگان روحانیان یا اشراف بودن کمپیسیوس همین طوره لعوتو همین طوره بودا همین طوره زردوش همین طوره مانی همین طوره، مزدک همین طوره سغرات همین افلاطون افلاتون ارسطو همین طوره در قرآن که تکیه میشه جهواللزی به بعث فی الامیین رسولا منهم از امیین امیین توده های جامعه هستند. تکیه میشه که از خود مردم پیامبرانی فرستاده شدند پیامبران ابراهیمی هستند که از متن مردم برخواسته شدند اینجا مقصود این نیست که این پیامبران سرشته نبودند یا قوای مجرد نبودند از انسانها ها بودند نه از ناس یعنی از متن توده بودند از طبقات خاص و خاص و زبده ها و برگزیده ها نبودند اینکه این, این پیامبران به لسان قوم خودشان سخن میگفتند بر خلاف بسیاری از مفسرین که خیال میکنند که یعنی پیغمبر اسلام چون توی عرب برخاسته به عربی حرف میزده و موسی چون توی یهود برخاسته به عبری سخن میگفته این گفتن نداره مسلمه پیغمبری که در عرب مبعوث میشه که نمیتونه به چینی یا به یونانی حرف بزنه اینجا ذکر شده که نخیر به عربی سخن میگفته به لسان قوم خود سخن گفتن یعنی به زبان توده و بر اساس درد و نیاز و خواست و فهم توده مردم سخن گفتن یعنی مثل فیلسوف و شاعر و روشن فکر و تحصیل کرده امروز به زبان خواست سخن نگفتن اون چنان که توده زبان اینها رو نفهمه رنجشون و حساسیتشون رو نفهمه و اونها هم زبان تو تودر نفهمه همه جا میبینیم در بحث از پیامبران ابراهیمی بحث از ناس بحث از مردمه و همچنین بحث اینها با بحث اون پیامبران دیگه باحت فرق داره به احسط اون پیامبران غالبا توسل به قدرت موجود است برای اشاعه دینشان فرصت نیست یکا یک بگم قبلا گفتم در صورتی که پیامبران ابراهیمی به احسطشون همواره به صورت توسل به مردم است علیه قدرت موجود در زمانشان ابراهیم رو میبینیم تا مبعوث میشه گرد می و بر میداره و موسی چوب دستی چوپانی را و یورش به کاخ فرعون میاره و قارون رو در خاک مدفون میکنه و فرعون رو در آب قرد و پیغمبر اسلام پس از اینکه مدت مدت سرسازیش تمام میشه آغاز جهاد میکنه و در مدت ده سال بیش از شست و پنج جنگ داره و هر پنجاه روز یک نبذ و یک کوشش نظامی اساساً معجزات اینها هم نشانه ای از گرایش و جهت به معجزات اینها هم به شکلی است که یا اجداها شدن و فهر را دریدن و اسلام قرآن با اعلام این است که اسلام دینی نیست که قرآن آورده باشه یا آورنده قرآن بلکه یک دین واحد در طول تاریخ است که هر در قرنی آمده تا این دین را به مقتضای زمان و بر اساس قوانین ملازم و متناسب با زمان تبلیغ کنه یک دینه و اون اسمش اسلامه با اعلام این اصطلاح و تعمیمش میخواد به اسلام یک جهانبینی تاریخی بده و به نهزت اسلام یک اتصال و پیوستی به همه نهزتهایی که در طول تاریخ با شرک ها دفتادن و برای نجات مردم با زورمندان و زرمندان و فریبکاران به جهاد برخاستند و همرا یک جنگ و یک دین و یک روح و یک شعار در طول تاریخ بشری و در همه سحنه ها و همه اسما و نسل ها توجیه کنه. یک يطرونا با آیات الله در اینجا نگاه کنید که تسلسل تاریخی را قرآن به چه شکل بیان میکنه و این نهضت ها پشت سر هم به چه شکلی تسلسل میده. یک يطرونا به آیات الله کسانی که با آیات خدایی کفر میورزن و یقتلونن النبیین به غیر حق و کسانی که همین کسانی که پیامبرن را به ناحق می‌کشند و یقتلونن لذین یعمرون بالقفت من نا و نیز میکشند کسانی را از مردم که به قسط و عدل دعوت می‌کنند می‌بینیم آیات خدا را دنبالش پیغمبران خدا را آورده و دنبالش همه کسانی را به عنوان ادامه دهندگان نبوت و به عنوان وارسان نهضت انبیاء ابراهیمی نام میبرد که از میان مردماند و برای تحقق ادالت مبارزه میکنند این نوع تلقی اجتماعی و فلسفه تاریخی و بشری و توجیه نهزتهای گذشته است در این مکتب و پیغمبر اسلام آخرین پیام‌آور این است که در طول تاریخ به تصویح مکرر قرآن همه پیامبرانش آمدن تا حکمت را، کتاب را و عدالت را در جهان تعلیم کنند و پیغمبر اسلام آخرین پیامبر از این نحظت جهانی و بشری پیامبران است که به نام اسلام بشریت را به عبودیت خدای واحد میخوندند تا از عبودیت غیر از او سرها را آزاد کنند و پیامبر اسلام آمده تا با تحقق همجانبه جهانبینی توحید وحدتی به تاریخ بشری وحدتی به نژادها، به ملتها به گروهها، ها خاندانها و طبقات اجتماعی بشری ببخشد، تفرقه هایی که همواره به وسیله مذهب شرک توجیه می شده. شعار توحید پیغمبر اسلام شعار آزادی بخشی بوده است که بیش از و پیش از این که متوجه متکلمین و متفکرین و تحصیل کرده ها و فیلسوفان باشه و علما بردگان و خردگان و گرسنگان و تحقیر شدگان نسبت بهش حساسیت یافتند و برای همین است که در مکه گروهی که بر برو گرد آمدند جز چند تنی همه از محرومترین و گمنامترین و تحقیر شدگان و تحقیر شده ترین عناصر جامعه بودن به دلیل این که دشمن پیغمبر اسلام را تحقیر میکرد، که ارازل ناس بی ها فقط دوره برشن به این بزرگترین ستایش امروز برای این نهضت. در حالی که در حالی که رهبران مذهب بودایی را میبینیم که همه بی کم و کاست از اشراف چین و هند هست. امروز ارزشها ها فرق کرده این است که پیغمبر اسلام که آمد بردگانی که در طول تاریخ یقین کرده بودند <تصفح> <تصفح> <تصفح> که سرنوشت محکومشان بردگی، بردگانی که و تحقیر شدگان محرومانی که به زبان دین یا علم یا فلسفه و یا به زبان زور یا به زبان شعر و هنر که همه در خدمت خاجگان بوده باور کردند که برای زج کشیدن و ذلت دیدن و بار کشیدن و گرسنه بودن زندگی میکنند و متولد شده‌اند و آفریده و این طبقه مستضعفی که یقین کرده بود که خدایان یا خدا با آنها دشمنند و برای برگزاری کار خلق و کار جهان آنها را بارکش دیگران بار آورده و همچنان که مانی پیامبر می گفت که از نور و ظلمت سخن میگفت، گفت شکست خردگان بیچاره از ذات ظلمتند و فاتحان زورمند از ذات نور و ارستوب و افلاطون متفکر نابغه میگفتند که خداوند یا طبیعت گروهی را برده خق می کند و گروهی را آزاد تا آزادگان با زهمات و رنجهایی که بردگان در تکفل کارهای پست میکشند. فراغتی پیدا کنند تا به کارهای متعالی از قبیل اخلاق و هنر و شعر و موسیقی و تمدن بپردازند. و پیامبر اسلام آمده بود تا اون نهضتی را که در طول تاریخ با فریب و دروغ و شرک و تفریقه و برتری و اختلاف طبقاتی پیوسته در جهاد بود تکمیل کنه و با اعلام این که همه ای انسان ها از یک نژادند و از یک منشه و از یک سرش و دارای یک خدا برابری عمومی را اعلام کند و همچنین با توجیه فلسفی و همچنین با نظام نیرومند اقتصادی یک برابری هم اعتقادی و هم حقوقی و هم اجتماعی را در جامعه نمونه‌ای مدینه بریزد در جامعه‌ای که بلال بیگانه تحقیر شده برده در آن جامعه شرافت و ارزش و حیثیتی برتر از بزرگترین اشراف جامعه عرب که مسلمان هم شده و صحابی پیغمبر هم شده احساس می کند و همه درو به رسمیت می شناتند. جامعه برادران؟ ناگهان مردم مدینه عرب یهودی قریش میبینند که سالم بچه که قلام حذیفه بوده و در همین کوچه های مدینه به صورت یک برده زلیل و محروم راه میرفته اکنون در قبا پیشا پیش بزرگترین مهاجران قریش به امامت نماز ایستاده و پشت سر او عزیزترین و پشتکوهترین چهره های جامعه چهره های جاهلیت و چهره های اسلام ایستاده ها همه فرو ریخته و همه درهم شده خود پیغمبر خود پیغمبر با کوشش های بسیار میکوشد تا همه این ارزش‌های جاهلی و اشرافی ره بریزه دستور میده که لباس های بلند و پرشکور قیچی کنند <تصفح> های بلندی که علامت اشرافیته بقد کنند و دستور میده که متکبرانه در خیابان و کوچه راه نردن و دستور میده که دو نفری بر روی یک مرکب سوار شدن خود سوار میشد و دیگری در پشت سر خود سوار میکرد و گاب در علاق برهنه سوار میشد تا در چشمهای اشرافی پسند خار نماید یک زنی که عظمت و شکوه پیغمبر اسلام را شنیده بود سالها آمده بود مدینه تا جلو پیغمبر ایستاد زبانش گرفت عظمت مرد عظمت شخص اون دچار دوچار لکنت زبان کرد نتونست حرفش بزنه پیغمبر میره جلو و شانه میگیره میگه که چرا میترسی من پسر اون زن قرشی هستم که شیر میدوشید از کی میترسی مرد آخرین چوپان مبعوث، آخرین پیاماور از این مردانی که در فهره خاموش ناگهان برمی و بر خداوندان زر و زور و فریب شهرها یورش می مو موضت ناگهان ناگهان همه چیز دگرگون شد اختلافی که پس از پیغمبر بلافاصله فاصله شروع شد فاصله یک نیم درجه بیشتر نبود که از راه مستقیم منحرف شد. اما دوتا خط یک زاویهای که در آغاز یک درجه نیم درجه یک هزارم درجه باشه به میزانی که ادامه پیدا میکنه و به میزانی که در مسیر تاریخ پیش میره زبانهاش از هم فاصله میگیره و در نهایت این فاصله به نوت درجه می رسه و اگر عوامل دیگه و علتهای دیگه در کار باشن که هستن گاه این راویر درست معکوسش میکنه. کنه پس از مرگ پیغمبر میدونین دونین اونها رو نمی تونم شهر بدن پس از مرگ پیغمبر این فاصله کوچک و این زاویه بسیار اندک با راه مستقیم به وجود میاد و نسل به نسل فاصله با درستی و راستی و عدالت و حقیقت زیادتر میشه به طوری که بعد از چارده پونزده سال به دوره عثمان میرسه و عثمان پایگاه مغناطیسی میشه که همه عناصر ضد انقلابی را که در گوش کنارها سرکوفته و پراکنده شده بودند در قلب قدرت و پایتخت انقلاب اسلامی جمع میکنه و عثمان پلی میشه بین دوره انقلاب اسلامی و جاهلیت که میانشون حفره جهادها و حفره انقلابها ایجاد شده بود و از روی این پل پل عثمان پلیدترین عناصر اشرافیت نیمهجان و مترود میگذرند و بهترین پایگاههایی را که با جهاد انصار مهاجرین به دست آمده بود به دست میگیرند ابزاری می شود که بنی امیه و کثیفترین دشمنان اسلام به وسیله او نه تنها ضربه را که دیده بودن جبران میکنند بلکه بهترین موفقیت های انقلاب را تصاحب می و وسیله می شود که این قانونی را که تاکنون در تاریخ تکرار شده ولی نمیگم قانون جبری که انقلاب فرزندان صدیق خودش را میخورد عثمان وسیله شد که بلندگان و خورندگان فرزندان راستین انقلاب بر انقلاب کیره شدند و کسانی که به شمشیر اونها و جهاد اونها و تقوای اونها و صبر اونها این نهزت پایه گرفته بود و بنیان اینها به وسیله عثمان و به دست بنی ای که وابسته به عثمان بودند و مسلط و بر او نابود شدند و نخستین قربانی در این دگرگونی در این بازگشت انقلاب به دوره جاهلیت در این احیای عناصر نیمهجان ضد انقلابی علی اکنون علی و دوره علی مظهر یک جنگ تازه جنگی میان رهبران و وفاداران به ارزشهای نو به ایمان نو به شعارهای نو و به راه راستین اسلام و میان اناصر جاهلیت جدیدی که دو مرتبه در گرمایی که از حسادتها و نفاقهای دوستان در محیط پیدا شده جان گرفتند و رویاروی و یا پنهانی با بهترین چهره های انقلاب اسلامی به جنگ آغاز کردند <تصفيق> پیغمبر مذهر جنگ دورهای است که یک دسته مسلمانان پاک اعتقاد و دسته دیگه دشمنان بیگانه خارجی و اما علی مظهر دوره است که در داخل این نهزت جنگ میان وفاداران راستین این نهزت و عناصر ضد نهزت که در جامعه و نقاب تازهی جن گرفتن در گرفتند. جنگ اکنون معاویه و علی برخلاف جنگ دیروز ابو و پیغمبر که جنگ داخل و خارج بود جنگ دوست با دشمن خارجی بود اکنون جنگ داخلی است با دشمن داخلی و همواره در یک نهضت جنگ در صحنه خارجی و دشمبارزه با دشمن خارجی غالبا به پیروزی منجر میشه و در صحنه داخلی و با دشمنان داخلی که شکست میخوره و علی مظهر شکست نهضت اسلام در جبهه داخلی اما اما در برابر جاهلیت جدید اشرافیت جدید که دار جان میگیره علی یک پایگاه مقاومی پنج سال تمام تلاش و کوشش علی در جبهه داخلی با مشوکی جامعه توحید بتن کرده بود و با کافری که در ردای اسلام بیرون آمده بود و با بطپرستی که قرآن در نیزه داشت گذشت علی به دست مقدسین بیشعوری که بازیچه دشمنان باشعورند کشته شد میبینیم چه زمان میگذره پایگاه راستین انقلاب اسلامی تضعیف میشه در برابر جاهلیت جدید و دشمنان داخلی و پایگاه و اقتدار دشمنان داخلی قلیتر میشه به دوره حسن میرسه حسن وارث یک حکومتی است که از پدر مونده سپاهی که در درونش نفاق تا اعماق صمیمیترین یاران علی نفوذ کرده بهترین افسران و فرماندهان سپاه پنهانی با پول ها و با زور ها و با وعده‌های بنی امیه سر و سر دارند و دارند برای یک فروش بزرگ یک خیانت بزرگ معامله میکنن. این سپاهش از نظر قلمرو حکومت حسن بر یکی از نیرومندترین و خطرناکترین و آبادترین قسمتهای قلمرو اسلامی دستی نداره و به دست دشمن افتاده در خود عراق جناها متفرق شدن خوارج روی در روی ایستادند حسن به عنوان مذهر آخرین تلاش سمیمی یاران نهضت جدید اسلامی در برابر جبه نفاق یا دشمنان داخلی هر روز ضعیفتر میشه تا صلح با دشمن با معاویه تنها راه چاره و امکانی که حسن ناچار میپذیرد زیرا شکست میخورد و شکست خورده صلح برش تحمیل میشه نه اینکه صلح را طلب کند حسن که در مدینه با عنوان رهبر و مظهر تلاش روح انقلاب در برابر جاهلیت جان گرفته جدید نشسته اکنون به صورت یک فرد در آمده به صورت یک فرد وقتی در داخل خانش نیز دشمن رخ نکرده و در حرمش و جاسوسان بنی امیه وارد خلوت و خانه محرم او شدن و حتی همسر او را مزدور خود ساختند و مسموم میشه میخوام این اعز کنم که قدرتی که امام حسن به عنوان رهبر نیرویی که به نام اسلام هنوز دارد مقاومت میکنه در برابر منافق به اندازه است که وقتی می در خود مدینه که شهر جدشه و شهر پدر و مادرشه و شهر خانواده او هست و شهر مهاجرین و انصار پیغمبر اسلامه قدرت این را و امکان این را که در جایی که خودش میخواد دفن بشه نداره در قبرستان عمومی به دفنش میکنه حالا نوبته حسینه. حسین حسین به عنوان وارث نهزت اسلام وارث انقلاب اسلامی وارث اون نیرویی که محمد ایجاد کرد و علی ادامه داد و حسن آخرین پرچم را به دست گرفته بود اکنون هیچ چیز به عرض نمیبرد. نه سپاه نه سلاح نه و نه هیچ قدرت هیچ سالهای پیرامون شست هجری هر رهبری هر امامی شکل مبارزه‌ای که انتخاب می از اینجا لستم بیشتر دقت بفرمایی تا مطلب روشن تر بشه آغاز حرف اساسی من هر امامی و هر رهبری شکل ای که انتخاب کند، شکلی نیست که بر اساس سلیقه و ذوق و انتخاب شخص خود تنها تعیین شده باشه شکل مبارزه را بر اساس شرایط و اوزا و احوال و نیروها و ازیاب شرایط و جبه دشمن انتخاب میکنه بنابراین شکل مبارزه که حسین انتخاب کرده قابل فهمیدن نیست مگر اینکه که اوزا و شرایطی که حسین در اون شرایط قیام خاص خودش ره آغاز کرد فهمیده بشه در اینجا الان پیرامون سالهای 60 نوبت به حسین رسیده زمان و مسئولیت در انتظار یک مرده گاهی هست که چقدر دشواره اگر چنین پیش آماره. گاه هست که سرنوشت یک ملت سرنوشتی یک ایمان سرنوشتی یک فکر یک جامعه یک عقیده چشم راه این است که یک فرد یا چند فرد چگونه عمل خواهد کرد؟ حسین مسئول نگاهبانی انقلابی است که آخرین پایگاه های مقاومتش از دست رفته است و از حکومت جدش و حکومت پدرش و برادرش یک چمشی میر برای نمانده و <تصفح> یک سرباست سالهاییست که بنی امیه همه پایگاه های اجتماعی را فتر کرده است که قره جاهلیت جدید بر همه ارزشها و آورده های انقلاب اسلامی مسلط است سال است که مرکزیت حکومت انقلاب اسلامی برچیده شده و اصحاب یاران نخستین انقلاب پروردگان مکتب شخص محمد سه گروه شدند گروهی که این انحراف را نتوانستند تحمل کنند فریاد کشیدند کشته شدند ابوذر رفته عمال رفته عبدالله مسعود رفته میسم رفته گروه دوم گروهی هستند که در اوضاع سختی که حق پرستی جنبازی میخواهد و مسلمان مندن نه فتح دارد نه غنیمت بلکه شکنجه داره و زندان توجیه تازهی به ذهنشون رسیده و اون اینکه بهش را بجای اینکه در جبهه جهاد به دست بیاوریم در کنج امن خلوت ریاضت و عبادت به تنگاوریم به گوثه های انزوا تعمل های با خداوند ریاضت روزه طولانی و نمازهای های نافل پرداختن نمونش عبدالله عمر اینها شخصیت های بزرگی بودند که در روزگاری و لحظه هایی که توده مسلمان در زیر چنگال قدار بندان بنی امیه چشم انتظار قیام اونها و مقاومت اونها بود که در انقلاب اسلامی پرورده شده بودند و دوش به دوش پیغمبر بودند کاری بکنند و در چنین لحظه ای از صحنه جامعه کنار رفتند و به گوشه مسجدها و خلوت ریاضت ها خزیدند و بهترین شخصیت های مسلمان را به سود کوف و ظلم در کنج خلوت عبادت قربانی کردند کیها ها خودشان را خودشان را. یک انسان آگاهی که مسئولیت حس میکنه و در برابر حق و باطل تشخیص داره اگر خودش را به گوشه خلوت عبادت هم بکشانه گویی یک انسان مجاهد آگاه را به نفع ظلم قربانی کرده و این انسان مجاهد آگاه خودشه این جنایت کاری که این جنایت کاری که که بی‌مزد و مننت جنایت می‌کند و بهترین عنصر‌های ایمان را به سود کفر قربانی می‌کند اینها اصحابی بودند که آبرومندانه از صحنه در رفتند ثومین دسته دستهی که راست و صاف از جبهه بدر و اهد و هنین و از مدینه جهاد و هجرت و کنار پیغمبر اسلام افتخاراتی را که جمع کرده بودند آوردند صاف و راست در کاخ سبز معاویه به فروش رسندند و پولش گرفتند ابو دردا ابو هریره ابو موسا هر روایتی یک دینار نرخ رسمیش و ابو صحابی که همیشه دوش به دوش پیغمبر اسلام بود و صحابی که خرمن علم حدیث پیغمبر بود کارش به جای میلسه که برای یزید که عاشق زن عبدالله السلام شده واسطگی میکنه